موش آهنخور روزی بود و روزگاری بود در زمان قدیم که بازرگانان خودشان برای خرید جنس به شهرها و کشورها مسافرت میکردند یک بازرگان کم سرمایه میخواست به سفری دور برود و برای همین مقداری از سرمایهاش را در وطن خود باقی گذاشت که اگر مثلا در بیابان مالش را دوز برد وقتی به شهر خود برمیگردد بی سرمایه نباشد اما گذاشتن پول نقد هم کار خوبی نبود برای همین صد من آهن خرید و آن را در خانه دوست خود امانت گذاشت تا اینکه سفر برگردد و پس بگیرد. با خودش گفت آهن از همه چیز بهتر است و چون وزنش زیاد و قیمتش کم است کسی آن را نمی دزداد. نه مثل پارچه آتش می گیرد و نه مثل جنس خوراکی فاسد می شود. این شد که آهنها را در خانه دوست خودش امانت گذاشت و خداحافظی کرد و رفت مسافرتش یک سال طول کشید و وقتی برگشت جنسهای دیگری که آورده بود مشتری نداشت چون قیمت آهن خیلی ترقی کرده بود فکر کرد که اول آهنهایی را که در خانه دوستش امانت گذاشته است بفروشد تا بعد جنسهای دیگر مشتری پیدا کند. پس برای بازگرفتن آهنهای امانتی رفت به خانه رفیقش. اما آن دوست قدیم به فکر خیانت افتاده بود. آهنها را برده بود در جای دیگر پنهان کرده بود و میخواست از پس دادن آن خودداری کند. این بود که وقتی بازرگان بعد از سلام و علیک و احوال پرسی گفت آمدم آهنها را ببرم. دوست قدیم اول خیلی به او تعارف کرد و خوش آمد گفت و بعد او را داخل خانه برد و گفت دوست عزیز از این پیش خیلی متاسفم ولی حقیقتی است که آهنهای امانت تو را در گوشه انبار گذاشته بودم و در آن را قفل کرده بودم تا اینکه یک روز برای کار دیگری به انبار رفتم و خبردار شدم که موشی در آنجا بوده و چون مدتی در انبار بسته بوده موش فرصت را غنیمت دونسته و تمام آهن ها را خورده است مرد بزرگان که فهمید رفیقش میخواهد با این حرفها سرش را کلاه بگذارد فکر کرد که با آدم به این پررویی و بدجنسی حرف حسابی زدن فایده ندارد و باید با ای از زبان او حرف کشید این بود که سعی کرد از این حرف عجیب عصبانی نشود و خودش را خونسرد و آرام نگاه داشت و جواب داد بله حق با شماست من هم شنیدهام که موش آهن را بسیار دوست دارد و هر جا که این لقمه چرب و نرم را پیدا کند میخورد و البته شما هم تقصیری ندارید تقصیر از من است که فکر موش را نکرده بودم رفیق خائن از شنیدن این جواب خوشحال شد و با اصرار زیاد به شام دعوت کرد و گفت مدت هسته یک دیگر را ندیده این و خواهش میکنم امشب را تشریف بیاورید شامی با هم صرف کنیم بازرگان گفت از لطف شما متشکرم چون امشب کار مهم میدارم فردا ظهر برای صرف نهار خدمت میرسم بعد هم با مهربانی با او دست داد و خداحافظی کرد و رفت ولی وقتی از خانه بیرون آمد بچه کوچک صاحب خانه را که دم در بازی میکرد بغل کرد و او را به خانه خود برد و به زنش سفارش کرد که تا فردا شب این بچه را با کمال مهربانی نگهداری کند آن وقت فردا نزدیک ظهر خودش برای صرف نهار در خانه دوستش حاضر شد صاحب خانه که از گم شدن بچهش خیلی پریشان و ناراحت بود از بازرگان عسخائی کرد و گفت ای مهمان عزیز امروز مرا ببخشید چون از دیروز بچه کوچکم گم شده و از دیشب تا حالا در تمام شهر جستجو کرده این و هیچ کسی از او خبر نداده برای همین بسیار ناراحت و پریشانم و هیچ حواس پذیرایی از شما را ندارم بازرگان گفت آیا بچه شما پسر نبود؟ صاحبخانه گفت چرا؟ پیراهن راه را و جلیقه مشکی تنش نبود کلاه پشمی نداشت چرا چرا شلوار سفید و کفش چرمی نداشت صاحب خانه با استراب تمام گفت چرا خودش هست کجا او را دیدی؟ بازرگان گفت دیروز که من از خانه شما بیرون میرفتم وقتی سر کوچه رسیدم دیدم یک کلاق سیاه یک بچه را با همین نشانی ها که گفتم به نیشش گرفته بود و پرواز میکرد لابد همین بچه شما بوده که کلاق او را برده است صاحبخانه خانه فریاد زد که ای دیوانه نادان حرف محال چرا میزنی و دروغ به این بزرگی چرا میگویی کلاقی که تمام وزن خودش نیمن نیست چطور میتواند ای که وزنش ده است را بلند کند و روی هوا بپرد این چه حرف چرندی است که میزنی بازرگان جواب داد ولی به نظر من هیچ تعجب ندارد در شهری که موشش بتواند صد من آهن بخورد کلاقشم میتواند بچه ای را ببرد صاحبخانه از شنیدن این حرف فهمید که اوضاع از چه قرار است و کار کار خود بازرگان است و دانست که جواب دندان شکن برای دروخهای خود اوست این بود که دست از بدجنسی برداشت و گفت فهمیدم فهمیدم ای برادر اه آهنت را موش نخورده بچه هم را بیار و آهنت را ببر مهمان جواب داد من هم درست فهمیدم ای برادر کلاق بر را نبرده آهنم را بده بچه را بستان و این را هم بدان که دروغ تو از من زشت‌تر بود زیرا تو میخواستی خیانت کنی و حق مرا بخوری اما من با این کار بدی که کردم و یک شبان روز شما را ناراحت کردم تنها میخواستم حق خودم را بگیرم